از کلمات اخباری در علمت محصول به زوافر کتاب شدیم و همیران با خاله حسرت تمام سرکلیم تمام روایاتی که استرداد کردن بخونیم البته محظمش انصافا دلالت به مطلب این نداره داره تکوتی که تو اونا به این کار میخود به جوابشن انشاءالله به خواهند شد از جمعه روایاتی که مرمون صاحب وسائل قدس الله و سر وقتی در این جهت اوبردن در از کتاب وسائل و درجات احادیس شماله 52 و 53 و شماره 53 این محمد ادن خالد این محمد ادن خالد در اینجا احتمالا محمد ادن خالد حیارسی باشه احتمالا داره که محمد ن برگی برقی باشه بیشتر نظر تررسی میاد محمد نخال تررسی شما هم بد ما راشیم بحث ها بحث رجالی رو نه میشیم. این کارانسن یه نقدار شما ترس میشیمان بنا بینید که پ ترس چون که هم روایات زیاد هم تکرالیه و هم خیلی تأثیری در محنف نداره تقریبا اگر بخیم مثلی بیاسی بگیم یه چیز در دوی یک گرسه در, در بحثه بحث جایی رو انجام میگیم بقیه بحثه جایی خودش محمد علی خالد تیارسی هم سیفر نعمیره انعبی بسیر قال قال عبو جرپن علیه السلام نحن الراسخون فلعه و نحن اتن نعلم و تردیل هست این محل راجع به قرآن سابقه دارد از اهد صحابه و بعد قابلین بودند کسانی که می گفتن ما هم تعبیر قرآن رو بلدیم غیر از اهل بی و صحیحش بیش ما همون اهل بی سلام الله بله در بسار اینجا اینجور نویشه احمد از محمد از خالد که بله به ذهن میاد همینی که ایشون کرده بهتر باشه چون گفتن بیمو خانوازه بسته چون این محمد این خالد ترازه کسان است که کتاب سیف نموزن کرده احتمالش بیشتر بارده یا مثلا ان احمد از محمد این خالد ان محمد این خالد به او بیشتر میخوره چون احمد از سیف نقل کرده باشه یک کمی تر قسمشون این با از باهند بشن که این حدیث هم از کردن در کتاب کلینی اگر یاد مقارب باشه در همین با این حدیث از کتاب کلینیشون بر به شماره پنج از کلینی برید. انا من انا محمد بن مهمن حسن من بن قال نحن را تصاقه حدیث و اینکه این کدوم یکیه و کما زیاد شدهیه خیلن به اجمال برمیشی حدیث شماره تنجوچار مرموم بسائر عنی عقوبن یدید و محمد ابن حسین عقوبن ازده بغدار به محمد سیر محل کوفه هر دو شون از ابن نبی عمر اما عمر ابن عزینه این برهی خوبه مصدر کار خوبه البته روایات امر ابن حزینه یک مشکلی داری که در جا شرفش انترسه طولانی قالو قلطلع خورد الله عزوجل بله هوا آیاتون بینات فی صدور لدین فی صدور لدین و اوتو لعلم انتون هم آل من آنیه کنم به هی حدیثم از کافی گذشت دیگه من در وقتی هم که از کافی میخوندیم از کردم بعد خواهد آمد دیگه هی بخواهم بگیم اونجا گذشت اینجا گذش و این احمدت محمد که مراد احمد اشعریز ان الحسینون سعید ان سخفوان ان ابن موسخا ان حمزه ابن همران این حمزد ابن همران ظاهرن سقل از این قدر همران همرانی و تفصیلو فی محله ان عوی جعفان علیه السلام این یک سمر و ان البرغی ظاهرن برغی مراد برغی پدر باشه یا احتمالا ان البرگی اصفر حسین سعید باشه این بهتره یعنی احمد عشقی از برقی قدر اینجوری بخونه ان عدل جمع که فتحیز ان اثبات بد نیست یعنی اثبات پسرش مشروطه از خودش در قولیه تالا بل هوه آیات و بینات فی صدور الگین او طلعه این حدیث خودشه تفسیر این حدیث بخلقه و درست باز حدیث دیگری در اینجا شماره پنجاه و یعنی باز از احمد اندل خسیمین سعید انقاسمون محمد جوهری این ای توصیق واضحی سریحی نداره اما از شبابه شده ان محمد ابن این محمد ابن یحیاب این تبره عادتاً باید می باشه خان عبد الرحیم اینجا عبد الرحیم داره لكن در خود نسخه مفعول عبدالرحمن داره انشاء الله اوه این دو تا برادرن عبدالرحمن و عبد الرحیم برادرن بله برادر. و عبد الرحیم البته یکی شازده یکی شازده دیگری عبد الرحیم عبدالرحمن بن اوتیک القصیری انا عبی جعفر عليه السلام قال انها دل إن علم انتها علیه في القرآن ثم جمع عصابت و بحثتون جعفتون به سینشون اشاره فرمده بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتو العلم این آیه دلالتش، این حدیث دلالتش قیل از اونا یک نقطه لطیفی توش داره اون نقطه لطیف انها دل علم این حکمی رو که من میگم اینا همهش در قرآن برمیگرده این یک مقداری که ممکنه به در درمان اخوالی بخوری من از کردم در دن دن دنیای اسلام حضرت باغر سامال الله علیه امتر بینشی اکموسلم سنیه ها چرایدشون رو بانوان باغر میشنسن لنه ها بغرر علم این بغرر منش که خافتنه یعنی به اصطلاح این روز ما تعبیر و ترض اگر اینطور باشه اگر اینطور باشه و توضیحات شروع حالاً از خیلی از لمان آمرشون این مسئله پیش آمد که از عمر کسی سآلی کرد واغر شده گفت ترض می اما که شلال رو که بالا کسی رو گفنه ترض نکنه حتی شده سوال رو لضا یک دخصی اصولاً در از زمان صحابه و خواهر می خرد تو بعد سنت هم هست از سوال و عمال هم یه قد اون بود؟ انسان از مسئلهی که واقع نشده ترگردم پر پرد میشونه از واقع نشده با پیشرفت علم را با گرفت که پیش آمد و انتقار فیخ. اینا به این نتیگه که این را که عمل پرد کرده درست نیست سوال عمال هم یه ما اگر میخواییم شگرد احاسه داشته باشه و اسدی آب و شمول داش بعدش این فروز مختلف رو مطرح بکنه تانجی که ما میدونیم اولین کسی که در دنیا اسلام این راه رو باختن ما با یه یعنی می‌خواد خود اهل سنت صح وارد کردن ابو حنیفه رو وارد میدونن میگن یعنی سفر تاریخی یا سفر تقدیری یا سفر تخمینی چقدر تغییر شده در کلام ما اونها یعنی این فروز مختلف و اشتقاقات مختلف شقوق مختلف رو ابو حنیفه مفرد کرده. اما خب این خود شاهده و این که این کار ترسل امام باقیه رو ابو حنیفه تولدش حدود 23 سال بعد از امام باقیه و هنوز مثلا مرد مثلا جوانی که امام باقیه خوب کردن در اون حد ها نبود اسلام حالا این امام باقیه بعد امام میفرماید قال ان ها در این این اگر بشهقدر می‌گویند یعنی امام می‌فرماید که این تقریرات و تشریفات و شواهد مختلف رو انتهی قرآن, قرآن در این و از یکی از چهرهای معروف اصحاب ما جابرت الان" در کوصه میشه من نگاه می‌کنم از اهل سنت مذهبان مگه گرفتن که ایشون کذاب مثلا بسجی مثل رو خیلی بیتا که من یه سوال واقیح هم توزیزه اولین کسی که خیلی بیشون همزه شروع کرده همون ابو حنیفه میگیم که کذاب بوده چرا چون من میامدن اومدم و انجام میدادم به فکر خودم ابو حنیفه می اومدن به جابر میگفتن جابر, میگفتن. جابر میگفتن. نه نه تفریقات صورت نمیخواد محمد نعری العبی که زن رسول الله این تبدیقات صاحبیه خودم بود این آقا برای سنت نعروه میکن به رکعه این گفت این گفت این کبزاره این پسند شد نقردشه اگر این باشه این امام باغیر میکنم همین تشریقات همین صورت همین فروز تمام اینها رو من از قرآن گرمیادم اگر این تو این نهاد الال این رو اینجور معنی رو کنیم و انصافا اگر این باشه شدیه کلام اخباری میشه چون اینگر احکام نظریه رو نمیشه از قرآن اینها در این امتها علیه قرآن ثم جمع اصابه ازه سم قاد بله هوا آیات و بینا و احتمال مخاطی که من میفهمم شماها آمه مردم آمه باقه ها این مزر را الگتی داری داره که محمد مسلم میگه به امام از کردن باقه ها لا یک ها امام فرمود ارعایی که فقیه تو فقیه دیدی که حالا این عرف رو بعد می توان بله و آیاز و بینات فی و یعنی این اختصاص به ما داره شما نمیتونید این تشریقات و تفریعات رو از قرآن داره این حدیث شاید دلالتش به کلام اخباری ها چون تا حالا چند تا حدیث بخیم احتمالاً بد نیست یکی مندار قرآن قران بعض او بعض احتمالات اوندار مژمل بود نتونیم درستکردید در یکی اون نامه ای که حضرت و شهر صاد نوشتن در کتاب محاصل وقتی مرسلایه کمی حیث مرسره که در احتجار نیز و تقسیم بندی آات قرآن از می رو مهمنی. احتمال داره سریح نیست اما سه ش از این روایاس به دردشون میخوره از که که بر مای شهرانی نوشته هیچ کدومش دلار میکن نه بعدش این هم اجمالا دلالت میکنه اینها دلال انتها علیه تلقرآن که این تلقرآنم مثلا من الکرآن مثلا که من تمام اینها رو از قرآن گرفتم بعدم فرمان که بله آیاتون، آیات و بیانه و و صدور لبینه او که از فرم کلمه او در اینجا به لحاظ اصناد الالله وقتی فعلی رو به خدا نستایت بسیخه مجهول میوردن که با خاطر نورانیت علم مثلا مراد از علم همون علام حقیقی و عالم حقیقی حضرت حق که اتیان میکنه علایه حاله در این بدایت بعد نیز از کردن مشکلش مشکل این تعبیر تعبیره که تشریق مختلف رو ما میتونیم از قرآن در بیاریم این هست در بدایت و انصافه هم خوب کار سنگیم چون عملاً ما هم الان در فقه عملا تشریقات رو از قرآن نمیتونیم دربیاریم انصافش این هست که باید قبول بکنیم این تفریعات و تشریقات رو از قرآن و حضرت من من همه این رو از قرآن میگم اینطور نیست که حالت قرآن باشیم بلاحظه سهل مشکل داره در عبدالرحیم یا عبدالرحمن هر دوشون رو از نداره و عمل حسن ابن علی حسن شن به امام باقر معروف این بوده اخرسن باقر بدر راست میواد یه قرینه خارجی بگیم این واسه کنیم کمی چیز تذی بوده بقیم. مثلا, اگر مثلا باشه اینکه مثلا اهل الله بزرگ باشه که مشکل نداره که اینکه خیلی مختص الا دیگه در و آیاتون برای ما شیذور لدین اوطره ظاهر باشه اظهار علمی شده خاصی باشه اون چیز که خاصی که مناسب با امام باقر تشریحات تفسیریه حدیثی شماره پنجا و هفت مثلی که این حدیث دوباره دو امرده یک بار این طوریه ان الحسن ابن علی ان عبدالله بن محیر حسن نوشن که اشتباه نیست؟ باز در حاشه اشتباه نوشن؟ آمده؟ حسن ابن علی؟ نه نه اول حسن ابن علی <متصف> ان حسن علی ان عبدالله مغیره بله این غلطه ان حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره این حسن ابن علی نقی عبدالله مغیره است این استاد مرحوم جعفر ان ابی سدنه هشام ایشون بزرگواره در این کتابی انتشاری ابی سد ذکر شده من فکر می‌کنم چه قاعده بود ابی سد باشه چون نشان مسقر عباسه آلازم تبقیه تصریه در باب سر باید عبایست باشه اما زفتش من عبایست نیم باشه عبایست زفتشه عبایست ابن هشام که به نظر من باید عبایست ابن هشام باشه چون اسمش عباس ابن هشامه ببین توازه ای که دارش مسقر اسمش رو به کار نبونه عبدال کریم عبدال کریم در اینجا در قائده عبدال کریم مهم و ملقب کرام که از واقفیه استره و بزرگوار با از واقفیه است. از سماعت ابن مهران سماعت که شخص جیل و قدریست و از که می معروف بین اصحاف ایشون واقفی می دونن مرحوم شیخ صدوخ و شیخ توصی. این دو بزرگوار وقت رو به دادن نجاشی به اون اسفت نداده مرحوم نجاشی واقفیه و به ذهن ما میاد که سماعت به مهران واقفی نباشه نسبت مشهور خلاق واقف بله یک چیز هست اینا ظاهرن محشه اشتباه اون شده از فرمان کون بناره اینجا با به بحثای رجالی و فهرستی و بشن احتمالا واقفیه اختیاری و میراست های سماه حساب کرده. این هست یعنی واقفیه به خصوص سعی کردن. مثلا اگر دوی اواز مواردی بود بیشتر به حدیث سمایه ترسل کرد. یعنی احساس این بود که در فکر واقفیه چون هیچ کس نگفتونه که نگفتن من بیگه اونه که گفتن که گفتن احساس خود من که چون هیچ کس نگفتونه از احساس خود من اینه که در فکر واقفیه ایشون نفش بالایی داره اسمش زیاد بیده خیال کردن جون واقفی مثل ابن شعبه ساعت بعد اکول خب بلا رسولی کن درمیان نو ها بود درمیان حلبی های شام سوریه کن درمیان نو سیری ها بود به نظر آن ایشون نو سیری نباشه شدید بایدی ایشون نو سیری باشه امامی اسماعه شدید بین اونها زندگی می کردی شاید خودش را هم درست معرفی نمی کردی به نظر امامی ها سر این که سماعت ابن مهران با واقفی نگاه کردن این نقطه ایشون واقعی بودن شوشن نیست اما به احتمال قوی در میراث‌های واقعیه انیشون زیاد نهر کردن خوب دقت اینا نکات فندی دارن میخوام شعر بدم خودشکی دویدیر از شعر اینا رو بدم من به اقتصاد میکرم فقط بحث زیاد نیست اون نکته رو که ارز کردم چون گاه میشه توی یک مسئله رواست سماه بود با رواست زراره اینا بیاندن رواست سماه رو مقدم میکن دیگه حالا اعتقادش این بود که این درسته وقت این چی شد در ها اصلا در برنسته بود می گفتن مذهب واقفی اینه وقت ممکن بود چیه روید زراره مقدم شده وقت چون مذهب واقفی اینه خیلی نقطه ذریفه خیلی شهر میخواد این آسانی نیست، افتلاکه اگر ایشان الان تب بودن بشنید تا بعدیم بشنی شده شده شده چیه وقت بگرز بکنم می گفتن مذهب واقفی اینه و شون روایت سماعه بود اینا تصورشون شد که سماعه واقعی نیست سماعه واقعی نیست ثابت نیست حتی گفته شده سماءشون در زمان امام صادق کو کرده داریم چند تا روایت هم داریم زیاد نیستن مثلا کمه سماء انار فتنه اسلام اما معلوم نیست ایشون اصلا خوبه موسی بن جعفر درک کرده باشن که مخا واقعی بشن اصلا ایشون به زمان رفع نرسیدن که واقعی بشن روشن نیستازن به زمان رفع رسیده باشن الا یه حاله نسیم جو کده عبدالکریم از نزولان واقفیه از بال این دوز. آن هم سماق تنبیه ها. قال آنالی عبد الله اینا الله علّم رسوله الحلاو و الحرام و تأويل. و علّم فعلّم رسول الله علمه کلله علیا. اینها مجموع ارباییاتیه. ای تأويل هم کار ماها نیست ولو تأويل انتباهه مثلا ممکن است در الان مثلا بذاره افراد فاسد، فاجر، ظالم مثلا افرادی که به جهان اسلام حمله کرد، این مثالی مثلا قرآن آیه ارزش این شفا رو به خدا، الهی که شهر نبی مثلا ممکن است اما این در واقع باز هم کار اهل بیته انتباه حقیقت انتباه هم تفسیر کار اهل بیت هم تعویض کار اهل بیت. از این دو تا به جای همدیگه بحث آورده. ان آخر بحث ان شاء الله ایشون این رو به سند دیگری هم نقل کردن ان احمد بن محمد که اشعری باشه ان حسین بن سعید ان فضاله از کنه فضاله از کوفه است آمدن در اهواز و میراسای کوفه رو به اخواز آورده. بردن ان عمر ابن عبان کلبی ایشون عمر ابن عبان هم سغرست چیزی نداره که های شما ها اینجا آمارن نابانال تلی و راه آشیه آش.الا یاهانان اونی که در کتاب کتاب مساعر هست اینجوره و احمدو آن علی یبنالحکم آن آمارن نابان این نیست را اینجا افساده این سند سوم میشه. احمد از حسن سعید یک سند اون اولی که یک سند اون حسن ابن علی که به اول بود این نوی عبدالله ممهیره است. این معروض بوده در قم به عنوان حسن ابن علی کوفی ایشون اون نوی خوده یعنی حسن ابن علی ابن عبدالله این شخصه بزرگواری همه سرقه و جریغت از شرم طولانی میخواد حال خود ایشان و جده ایشان که در قبای ما خیلی نکار در اینجا تحت به شده، ییخه خیلی شادیده، در اصل امام صادق عبدالله بن موریو، نروی ایشان، و آثارش و انتشار آثارش، احتیاج به شهادت که جاش اینجا نیست. این سطر دوم سند بود که احمد از علی حسین سعید کرده ما هم الان دقیقاً نمی‌دونیم احمد چجوری که کتاب‌های حسین رو گرفته، در اون مدتی که حسین قم آمده ازشون نال کرده، یا خود احمد اهواز رفته از حسین کرده. عربان اونهاشن سند سوم احمد ان حکم از انباری حکم انباری احد احمد... به ان اینجا اولو اسناد داره یعنی اینجا احمد به واسطه از عمر اونجا به واسطه عمر داره این سند درسته ان اودین ادهیم ظاهرم مصفر آدم باشه احتمالا بفتش در عدیم کنده باشه عدیم ابن نفر به نظر من باید ادهیم درست باشه اخی ایوب ابن نفر ایشان سقرست اما همرانه نه احیر ایشون هم است. این حدیث به جمعی افثانی درش معتبره سقر سند داره خیلی واقعا شتاب بسایل مشمول شعر مرجع مصاحف علمی اجمالش که هزل فرمود که اینا الله علّم رسوله الحلال و الحرام و تعبیل نمایی عالم تعبیل او ایلا الله و رسول بوده فریق عالم الله هست الله رسوله و رسوله الله علّم علیا کل تعبیل کل عروق مالی. تا اینجا هم روایات مرجع در درجه تماشه از شماره 58 از طبری در تفسیر تغیر که الان شاک شده کرار انتخاب شده بهلام جوامع مراد ایشان از تفسیر تغیر اینه انا صادق من انده و علم کتاب ایانا انا هر از خود هر کسانم گذشتیم مخاطب و عمل باقر و ما علم و تجید و لله الا اخذ الراشدین نه و ان حفی قولی دیگه از کلام از نظر فنی امروزه این قبول نمیشه که ایشون بیا یه ای حدیث رو از دو مصدر نقل بکنه که یکی باشه دو تو تا شماره رو بشه نه وقتی شما رو بشه ایشون دو شما اون نکته اول بحثیاتون باشه که این شماره گذاری ها مال محقق ما کتاب نیست این شماره گذاریه ما معلف کتابه خدا مرمومی شیفا بار این شماره گذاری گذاریدی به این این شماره گذاریشان گذاریدیشان دقیق نیست الان انظر اینو قابل قبول نیست اینا حادیثی که مکرره در زید خودش باید است. نه اینکه که اون مسدر عرض شد چون دیگرش حدیث شماله 58 و 9 و 60 و 61 رو کلن از کتاب جواما و جانعه مرموم تبرسیشون رو بردن حدیث شماله 62 رو با حدیث شماره 63 رو رقم 62 تنها رو از کتاب میگنا محکم رساله محکم و متشابه یا به نقل ایشان نقله ان تفسیر نوبانی ایشون از اونجا آوردن اینه من در دفتر مکاسب توضیح دادم یک کتابی است که الان دیگه من نیستش تو شده به اسم رساله محکم متشابه اثر داده شده به سید مرتضی در آثار 13 کتابی نیست مطمئناً بله و ایشون هم از تفسیر نعمانی توی نعمانی تفسیری گفته که درمون به این نمیخوره ولی در حال اون کلی بحثی طولانی داره به اسناد الهاتی ابن اسماعیل بن جابر این اسناد الهاتی در توضیح دادن ایشون تو جلد 19 همه این شافیا 20 همه، طریق سید مرتضی این اسناد رو آورده یک جا آورده اون سند البته تفسیر تفسیر نعمانی نیست مرموم صاحب وسائل و عدهی کل کتاب رو یه با عنوان یک حدیث از امیر محنی نهار کردن از کردن چون که من میدونم حالا خیلی بی هم در این جد کافی نیست اولین کسانی که این رساله رو به این عنوان آوردن مرموم بهاره در زنده 92 یا 93 بهار کلیش رو یه جا رو کنده و صاحب وسائل تختیل کرده بشون یه جا رو کنده و بعدم صاحب بهار اینجه که یک نسخه دیگه پیدا کردم از ناسخ القرآن و منسوخو منسوب به سعد بن میگه با هم تشابه دارن هم خیلی عجیبه یعنی واقعا من که سر در نمیارم اخه چطور باشه تش... چون ناسخ القران و منسوخو نسخه خود مردم ییتی صاف چاپ کردن تفاوتش با این, تف... با این کتاب خیلی زیاده نیست اینکه بله بعد از مزامینش با هم میخوره الا تفاوت کتابی خیلی زیاده و این کتاب نه اون کتاب نسبتش به سعد بن عبدالله روشنه مرحوم سال و سال از اون نسه سعر بن عبدالله نقل نکرده دلوقت دلوقت. و کذالک مرحوم بحار هم از اون نسه نقل نکرده و اینم خیلی تحجب هست برای من که اون حل نشده چون هر انسانی انسان که اون نسه رو با این نسه از زمین تا از ما چطور که فقط اکتفا کرده به یک تحجیس از مطلب نوشته ایشان خیلی برای ما جای تحجب داره در هر حال این مرمون سال و سال فلطین نسخه نرم کرده سند حدیث منتهی میشه به اسمایل بن جابر سادقن آبایی تن علیه آل الله بحث محمدن فقط هم به الانبیاد فلا نبی بعده و توضیحات فرامان این کتاب رو مصبر میخواد امه هم داره میخوادن هم داد این که ما این رو یک سنده واحد بدونیم مثل سال و سال و بگیم یک حدیث واحدیست از امیر المومنی اصلا بعد از این ما در تهران این رو با امان محال می تنزید کلام الامیر چاپ کردن اصلا یک جد همون نسخه رو به این اسمی این اسمیس که ایشون داده اسمیس که واقعی باشه و خیلی مفصل در اینجا مسالب داره در اینجا می‌بین وزاره که اصلا کلامی فوازی که کلام ارزنی نیست یعنی به لحاظ ادبیات که ادبیات عربی عادی داره یعنی آمیانه این صحبت عادی نه اینکه یک ای ای ادبیات قوی باشه وزاره که با در فن هم خسره نظری نبی حمزه بصفایی هست که احتمالاً چون مؤلف رساله ایشون باشه راستی عمر راشه وزاره که انه قران بعض و بعض بحث جو به نامصوخ و هم یا رنون انهان ناسخ وقتا جوب الخاص و هم یا قدرون انهان آم وقتا جو اول آیه و ترک و سنتی تعمیران و لمیانورون الامایخت به کتاب کرامه الامایخت مون و اینجا یک مقداری راجع این که بله که محکم و متشابه چیز و نباید مردم مراجعه کنند به قرآن یه این نگاه دیازه رما از کردم اصلا کلام رو اصناد این کلام و امیر المومنین بسیار بسیار مطلب بعیدیست خوال عادت بعید نه اینکه احتمال یک نم میلیون هم بعیده که نصابیم و امیر المومنین این هست و این کتاب آمده البته عبارت دیگه هم تو این کتاب هست چون این کتاب سر کرده اصناف قرآن رو بریزه و اصولا اینجور تعاویر نزهان امیر امیر نبوده. اذا نام احتمال این کلامی باشه از خود حسن درباره علی نبی حمزه باطامی یا از کلام اسماعیل بن مهران این توضیحاتش چه ای جوریه جای این دیگه اینجاست نه این دراک شتاب حدیث شماره 63 فقط همین حدیث رو ایشون از کتاب تفسیر امام عسکری آورده عسکری مرحوم صدوق منفرد کتابی رو توسط این نفر استادش برای استاد یعنی که شیخ اینجانب به نام محمد نه علی عوالقار محمد علی استرابادی مفسر خطی تحبیه من میشه اصلاح ما با قول موزیه روز و بودی برای طبی کتابی در نقل میکنه و اعتماد هم میکنه اشتباه نشون صدوق چون صدوق یه تیکی از کتاب رو در کتاب من لا رو برده زبت این تصور نشه صدوق بر از راویه کتاب تفسیر امام از در کتاب حج ملای اخزار باب و تلبیه یک حدیث از همین کتاب تفسیر امام از در کل فحیف اونجایی که من خبر دارم فقط همین یکی در کل فحیف از این آقا نه رو احادیث دیگه اما از این تفسیر در اونجا و این آقا از نفر که نیوشنسی مجلوبیه که اینا ها پرار کده رفتن سامره را خدمت امام عسکری هفت سال خدمت حضرت بودن و حضرت به ایشون مثلا تفسیر فرمدن نصفه کلمات خود اون آقا مختلفه به از که همون دو نفر رفتن به از داری که هنعبیه ما پداران اونها رفتن آقایی بلا نمیشد اینی که الان هست اینه از این آقا یعنی از این مفسر خطیب استعبادی هست، ايدا از علو حمام عسکری جو های دیگه از بزرگان اهل سنت هم حدیث ها مثلا از همین اول یک نفر هر که این شخص از او حدیث ها منظور مقبول مطلقه چی <تصفيق> از جویه بیکاره چی از امام عسکری که تعریف میکنه مجبول چه از قول مقبول مطلبن چی از علمای اهل سنت از این مفسر فقیه حسابادی مثلا از یک نفر مثلا حسن علی نمیعفر که هیچ مجبور مطلق اصطلاح بندن کسانی هستند که هیچ اسم اونها در هیچ مصدری نه سنی نه شیعه نه ضعیب نه قوی در هیچ جا نیامده. منفردن همین شرح است. که به ذهن ما چهلی هستن. ایشون یکی از خطارت این مزلگان راویو را هم چهل میکرده. فرد کفاق میبین. نه اینکه براتون تفسیر از کریم مجبوره. این تفسیر که قفاً مجبوره اینکه در این تفسیری که قطعاً مجهول سندش هم مجهوله نه اینو که تفسیری مجهوله و منو بوده شخص بوده حالا مفصل بوده منبری بوده خفیف بوده یه سری معلوماتی اجمالاً داشته خیلی هم بلند نبوده طرف باسی زیاد می‌کزه حوادث یه چیزی به ذهنش غالباً به ذهن خدا ورجوئی مثلا به ذهن خدا مثلا احمد شاه حاجا این دو تا رو به هم دیگه رفیق بوده نمی‌خوام بگم اصلا ورجوئی زمان احمد شاه حاجا مثلا برجن نره خیلی بی رفت صحبت میکنه از این بی رفت از همه اول تحصیل بی رفته اینه که از همون جا که میگه سامن را خدمت امام عزکری رسیدیم هفت سال خدمتیش و هر شعه احمد هم یعنی میدونی که امام عزکری پنه سال و خورده امامتشونه وقتی هفت سال بشه قطعا باید که خدمت امام حادی رسیدیم هزور دوما همون که بایدیش بزن از همون سطرا دروغ بلی کتاب واضحه این مخصد آقای خدا رحمت از نایش دوستایی چهل مورد از کتاب استخراج استخداش کردن که خلاف واقعه این دنبال چهل مورد نه. از همه اول کتاب خلاف واقعه اینطور نیست دارم چند تفش درست باشه از همان اولی که میگه از خدمت این همه واضح بود زیدی ها در مازندران ایران حکومت عدد. اولین حکومت زیدی ها ده ده ده ده ده در ایران در کن حسن ازن زید ابو محمد حسن زید سال 250 یعنی زمان خود امام حادی در تبرستان خیام کرد و تحسیل دولت زیدی ها اساسا تو ایرانه دیوی سه هتاده هشتر یحیف نرکوسی میره به طرف یمن و دولت زیدی ها رو به نام امام الحادی که خودشون نظر علمی در بالایی داشته به نام امام الحادی زیدیه یمن رو در همین سعده الان محل زیدی هاست بناگذار اولین زیدیه در ایران و به استعافه خودشون زیدیه ایران هم. اینا سا بودش سال 400 و خوردهی بودن بعد یواشه هاش دیگه اصناعشه میشن مزمحل میشن و معروفشون حسن نعنی معروف به اطروش قبیره که جد مادری سید محتضاست سید محتضا مادرش از نواهای اطروش قبیره چون نظرم 270-270-370 چیه ای این حدودالا؟ 280-270 این حدودالا تدریم هم تو ذهن این کتاب رو این مفسر به این عنوان که دو نفر که اسمش رو که مجبول مطلقاً اینا وقتی که زیدیه در طبرستان به حکومت رسیدن که شیعه بودن در فشار واقع شدن خلاص شدن از سامره این دفتر انگلیسیه من اصل داستان رو خود داستان خود اشخاص همه جعلیه تمام که میرسن خدمت امام عسکری در را 7 سال از ایشان این حدیث رو کتاب رو می تاصادفاً هم وفات امام هادی کاولاً دقیقاً رخ شده است، هم نمی‌شود هر شهادت امام عسکری به امام هادی چون در قضایای مثلا صدر اسلام اختلاف زیاده از ائمه اطهار امین و مؤمن عمرشون تمیزه اما هرچی بعد اومدشون علم پیشرفت کرد دیگه در سال‌های 250 255 خیلی دیگه نو‌کشا رو علم و تاریخ و سخت و زبط و این در یک کتاب مال به اصطلاح ماله حالا بخشم بزرش آخری که نه ماله کتابی هست ماله نقوطیبه بینه علی امام و سیاسه آخره شده این در زمان حارون اینقدر پیشن داره که بچه هایی در یاد ساله مسائل مشکل کلام و که رو این که رو جده خیلی عجیبه این عبادت که آخر کتاب علی امام و سیاسه اما بینه حاله. وفات امام حادی کاملا در نیزه تن سال و شیش ما خورده ای امامت امام حسکری این با هفت سال که نمی سازه قاعدتا هر کسی که از ناشنایی با تشریعه داشته باشه میدونه که میگرم سامراه شدند امام حادی ایشون فهمده که کسر هم هفت سال در اقل پیش کسر هم امام حسکری مثلا تفسیر داده در هر حال یک چیزهای اینجا داره که من خبیه ندارم خداوی مراجعه فرمایید یک چست جهالی است به هر حال و بر. معلوماتی داشته این معلوماتو به صورت یک قصه خیالی بدون نظر قرار کردن اصلا کجا بود امام حاجی اینو تفسیر گفتن اون مجموعه معلومات ذهنی شدید غلط‌فهمی تو بیرقسه اینها رو بازشته آورده به اسم این که امام علی در این تفسیر به, بزرگوار یا به دو پدر این بزرگاری به قدر اینها که مرحوم آقای هم نوشتن چون ما فرض که شما اشیاء هستن مخلصی هستن پس شما چرا از این راه توصیف آیا اگه خویان نه چون خودشون راوی هستن توصیف قابل ارمون نمیشه اثبات توصیف کرد ما هم کردیم که جعلیه اسم جعلی موضوع رسافت نیازی نداره چون وجود خارجی این دو نفر وجود خارجی ندارن حدیث شماره 64 فرات ابن ابراهیم این تفسیر از, از, از این نخر کردن اینجا نیست به احتمال قوی جزه زیدیه کوفه است ایشان به احتمال بسیار بسیار قوی جزه زیدیه کوفه باشه همه رو خسین سعید شاید شخص دیگری دی باشه حسین سعید ما که نیست فکر نمید به اصنادی هم تعریف ابن طریق من عبی جعفر که حدیث کلامی من همه رو ابن عبیسی از بزرگان معتدرست قاله و اما قولهو و من یه رو علیه قضابی فقد فإذا حاجة الى تفسيره طب ابتدا و بنا به الی مقصد درس در مقابل مدار فاصله این مصادر طرز درس اون رخ از حدیث شماره 65 بیای این تا حدیث به اصطلاح 75 کلا از کتاب تفسیر عیاشی است دیگران و از حدیث شماره 76 و هستاد و نوم از کتاب مجموع دایت تربسی بله حدیث هشتادش از تفسیر علی ابن ابراهیمه بعدم خود ایشون یک ای جمعی بین روایات کرده هم اگر ما این آخر کلام میشونم رو تمام بشه بعد توضیحات ما راجع به این مطالی وسال الله علا محمد المعارم.